این داستان افسانه جوزف مقدس در جنگل یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون غیر از خدا هیچ کس نبود زنی بود که سه دختر داشت دختری که از همه بزرگتر بود بد اخلاق و خنگ بود دومی کمی بهتر بود ولی بدون عیب هم نبود اما سومی دختری خوب و با ایمان بود. مادر دختر رو خلق و خوی عجیبی داشت. اون دختر بزرگتر رو از همه بیشتر دوست داشت. ولی از دختر سومی اصلا خوشش نمی آمد. مادر اغلب سومین دختر رو به جنگل می فرستاد تا راهشو گم کنه و سرگردون بشه. البته که فرشته محافظ دخترک مراقبش بود و همیشه اونو توی جنگل هدایت می آخه هر بچه خوبی یه فرشته محافظ داره. اما فقط یه بار فرشته دخترک و تنها گذاشت و دختر تنها و سرگردان توی جنگل رها شد. اون تا شب این طرف و اون طرف پرسه میزد تا اینکه در فاصله دور چشمش به نوری افتاد. دخترک به طرف روشنایی رفت و دید. در زد و در باز شد. بعد به در دیگه ای رسید و دوباره در زد. یه پیرمرد با ریشی سفید و بلند و سیمای مفقر و محترم درو باز کرد. پیرمرد کسی نبود جز جوزف مقدس. اون با لحن دوستانه گفت: فرزند عزیزم بفرما تو. روی چهارپایه من کنار آتیش بشین و گرم بشو. اگر تشنه‌ای برات آب بیارم؟ من جز چند ریشه گیاهی که خودت باید اونا رو بپذی چیزی برای سیر کردنت ندارم. اون همونطور که این کلمه ها رو می گفت ریشه های گیاهی رو به دخترک داد. دختر ریشه ها رو با دقت پوست کند و در تابه گذاشت. آب و نون کمی که مادرش بهش داده بود و به تابه اضافه کرد و اونا رو, رو روی آتیش گذاشت تا سوپ درست بشه. وقتی سوپ آماده شد، جوزف مقدس گفت من گرسنم کمی از اون سوپ رو به من بده. دختر با کمال میل این کارو کرد. مقدار کمی از سوپ خودش برداشت و بقیه اونو به جوزف مقدس داد. با برکت پروردگار اون غذا برای سیر شدن دخترک کافی بود. وقتی غذا تمام شد جوزف مقدس گفت دیگه وقت خوابه. ولی من یه تخت خواب بیشتر ندارم. تو روی تخت من بخواب و من برای خودم با کاه دوشک درست میکنم. دختر گفت نه شما روی تخت خوابتون بخوابین. من از کاه برای خودم دوشک درست میکنم. با وجود این جوزف مقدس دختر رو وادار کرد که روی تخت خوابش بخوابه. دخترک بعد از دعا بلافاصله خوابش برد. صبح روز بعد بیدار شد و خواست با جوزف مقدس سلام علیک بکنه ولی هرچی گشت اونو پیدا نکرد. دخترک وقتی دنبال مرد میگشت کیسهی پر از پول دید که به در آویزون بود و روی اون نوشته شده بود برای دختری که شب و در کلبه گذرانده است. دختر پول پولو برداشت و با خوشحالی خودشو به خونش رسوند. کیسه پولو به مادرش داد و مادر به اجبار رضایت خودشو از دختر کوچیک ابراز کرد. روز بعد دختر دومی به این فکر افتاد که به جنگل بره. قبل از رفتن مادرش یه تیکه بزرگ نون و شیرینی بهش داد. همون ماجرا برای دختر کوچکترم پیش اومد. شب هنگام دختر به طرف کلبه ای رفت که جوزف مقدس در اون زندگی می کرد. جوزف مقدس به اون گفت که برای خودش سوپ درست کنه. وقتی سوپ آماده شد، مثل دفعه قبل جوزف مقدس به دخترک گفت: من خیلی گرسمه. یکمی از اون سوپت به هم بده. تو رو دعا کنم. دختر کمی از سوپشو رو به اون داد. موقع خوابیدن وقتی جوزف پیشنهاد کرد که تخت خوابش رو به دختر بده و خودش روی کاه بخوابه، دختر دومی دو گفت: تخت خیلی بزرگه. بهتر شما در این گوشه بخوابین و من گوشه دیگرش. ولی جوزف مقدس اونو روی تخت خواب خوابوند و خودش روی بستری از کاه خوابید. صبح وقتی که دختر بیدار شد، جوزف مقدس رفته بود. پشت در کیسه کوچیکی پر از پول قرار داده بود. کیسه به اندازه کف دست بود. روی اون نوشته شده بود، برای دختری که شب و در این کل به گذرانده است. دختر کیسه پولو برداشت و با عجله نزد مادرش برگشت. اما اون بدون اینکه کسی بفهمه دوتا از سکه ها رو برای خودش برداشت. دختر بزرگ که اوزارو اینگونه دید دندان تمعش رو تیز کرد. آماده شد تا روز بعد به جنگل بره. مادر هر قدر کیک که دختر دلش میخواست با نان و پنیر بهش داد. اونم مثل دوتا خواهر دیگه سر شب به کلبه ی مقدس رسید و اونو اونجا پیدا کرد. به این دخترم گفته شد که سوپ درست کنه. وقتی سوپ آماده شد، جوزف مقدس گفت من خیلی گرسنمه، نمه، یه کمی از اون سوبم به من بده. دختر بزرگ گفت سبکن اول من بخورم وقتی سیر شدم اون چرا که از غذا مونده بهت میدم اون تقریبا همه غذاشو خورد و مقدار ناچیزی برای جوزف مقدس باقی گذاشت با وجود این موقع خواب پیرمرد مهربون تخت خوابشو به دخترک تعارف کرد دخترم انگار تخت از آن خودش باشه بدون درنگ پذیرفت و گذاشت که جوزف مقدس بر بستری ناراحت بخوابه صبح روز بعد متوجه شد که از جوزف خبری نیست. اون به رفتن جوزف مقدس اهمیت نداد و فقط به کیسه پر از پولی که انتظار داشت پشت در پیدا کنه فکر می کرد. دختر چیزی پشت در دید و چون نمیدونست چیه خم شد تا اونو برداره. اما اون چیز به نوک دماغش چسبید. دختر بلند شد و با وحشت متوجه شد که به دماغش یه دماغ دیگه چسبیده. اون داد و فریاد براه انداخت ولی هیچ فایده ای نداشت. گریه کنون از خونه بیرون اومد و ناگهان جوزف مقدس دید. وقتی چشم دختر به جوزف مقدس افتاد با گریه و التماس ازش خواست که دماغ دوم از رو دماغ اولش برداره. دل جوزف سوخت دماغ دوم رو جدا کرد و دو تا سکم کف دست دختر گذاشت. وقتی دختر به خونه رسید، دم در مادرش ازش پرسید، چی به چنگ آوردی؟ اونم به دروغ گفت، یک کیسه بزرگ پر از پول گرفتم، ولی اونو گم کردم. مادر گفت، گم کردی؟ پس بریم و اونو پیدا کنیم. دختر که دلش نمیخواست بره به گریه افتاد، ولی با اصرار مادرش راهی شدند. در طول راه با هر قدمی که بر می داشتند افعی میدیدند و اصلا امنیت نداشتند در یک لحظه یکی از مارها سینه دختر و گزید و اون از پا درآورد چند قدم بعد هم یه مار دیگه پای مادر و گزید آخه این اون بود که همچین دختری رو در دامان خودش پرورش داده بود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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای صوتی ساین مهران دوستی،